نوار شماره 537 بی قسمت دوم کتاب آنا کارنینا اثر تولستوی ترجمه محمدعلی شیرازی صفحه 27 کاترین به طور یقین می‌دانست که لیفین برای این زودتر از همه میهمانان آمده است تا با او خلوت کرده و پیشنهاد ازدواج با وی را بنماید. در این موقع کاترین احساس کرد که ناگزیر باید تصمیم خود را ولو اینکه به ضرر لیفین و برخلاف میل قلبی خود باشد، اتخاذ نماید. لیفین داخل شد. به سوی کاترین رفت و دست او را گرفته، فشار داد و گفت: گمان می کنم من زودتر از موید مقرر آمده باشم. آنگاه نگاهی بر سالون افکند و چون آن را خلوت یافت با صدای لرزانی گفت من مایل بودم که شما را تنها ببینم و سپاس خدای را کاترین کلام او را قطع کرد و گفت چند دقیقه دیگر مادرم خواهد آمد. آنگاه چهرش سرخ شد و ساکت ماند. لیفین آهسته گفت من به شما گفتم که ماندنم در موسکو چندان طول نمیکشد و ماندنم در اینجا بسته به نظر شماست کاترین سر به زیرافکند و لبان خود را یزید لیفین با لکنت زبان گفت آری ماندن من بسته به نظر شماست میخواهم میخواهم شما شما بگویید که من باید اینجا بمانم یا نه میخواستم سوال کنم که آیا حاضرید مرا به همسری خود قبول کنید آنگاه از ادامه کلام خودداری کرد و حس نمود که سخت ترین لحظاتی را گذرانده است. رنگ از چهره کاترین پریده بود و به سختی نفس میکشید. کاترین هرگز تصور نمی کرد که اعتراف لیفین تا این درجه در او تصدیر نموده و احساس خوشبختی و مسرت نماید. ولی طولی نکشید که ناگاه به یاد فرانسکی افتاد و آهست گفت ببخشید این امر غیر ممکن است. از شنیدن جمله فوق، رنگ لیفین چون مردگان سفید شد. زانویش لرزید و زیر لب گفت ای کاش تونیم برخورد و نتیجهش رو پیش بینی می کردم. آنگاه قامت خود را خم کرد تا برود. در این لحظه شاهزاد خانم شرباسکی وارد شد. چون دختر خود را با لیفین تنها دید، نگران گردید. ولی همین که خموشی و گرفتگی آنها را دید، کمی مطمئن شده تبسم نمود. لیفین با احترام در برابر شخصاد خانم سرخم نموده کلمهی بر زبان نیاورد لیفین به خواهش شخصاد خانم نشسته و مشارون علیه از وی راجع به زندگانیش درده سوالاتی کرد. لیفین به اختصار پاسخ میداد. میهمانان شروع به آمدن کردند و پیش از همه کنتست نوردستون آمد. کنتست زن عصبانی و لاغری بود، کاترین را خیلی دوست می‌داشت و چون عقیدهاش بر این بود که کاترین شوهری شایسته تر از فرانسکی پیدا نخواهد کرد، از این رو تصمیم گرفته بود که هر وقت فرصتی به دست آورد، لیفین را که با فرونسکی در این امر رقابت می‌کرد، تحقیر و تمسخر نماید. لحظه بعد فرانسکی وارد شد، از آمدن وی، چهره کاترین باز شد، و لیفین یقین حاصل کرد که دختر او را دوست می‌دارد کسانی هستند که در مواجهه با حریف میکوشند که محسنات وی را از مد نظر دور دارند و برعکس برخی دیگر مزایایی برای حریف پیروزمند و خوش‌بخت خود قائل می‌شوند لیفین از دمره دسته دوم به شمار می‌رفت فرانسکی جوان متوسط القامه و دیپایی بود لباس شیک افسری بر تن داشت و دارای چهرهی باز و دل صافی بود فرانسکی با کمال ادب به شاهزاده خانم دست داده و متوسن به کاترین سلام کرد سپس محترمانه در برابر کنتس نوردستون سر آورده و بدون آنکه متوجه لیفین بشود بر روی نیمکت جلوس کرد خانم به فرانسکی گفت میشل لیفین دوستان من را به شما معرفی میکنم. فرونسکی فوری از جای برخاسته با تبسمی که بر لبانش نقش بست، دست به سوی لیفین دراز کرد و گفت: قرار بر این بود که وقتی سر میز شاهزاده خانم حاضر شویم، ولی شما ناگهان مسکو را ترک گفتید. راستی بفرمایید آیا زندگی در دهات خسته کننده نیست؟ لیفین گفت: نه، اگر کسی در دهات کار داشته باشد، احساس خستگی نخواهد کرد. بعد از جشن و که خانواده شرباستکی خیال داشتند هفته بعد برپا کنند گفتگو به میان آمد. لیفین که دل خونین داشت و نمیتوانست حریف و محبوبه خود را کامروا ببیند از جای برخواسته تودیع کرد و رفت. فصل یازده فردای آن شب مقارن ساعت ده فرونسکی به ایستگاه راه آهن رفت تا از مادر خود استقبال کند، و اتفاقا در آنجا اوبلونسکی را منتظر آمدن خواهر خود مشاهده کرد. همین که اوبلونسکی فرونسکی را دید فریاد برابر اینجا چه میکنید فرونسکی در حالی که تبصیل میکرد گفت من منتظر آمدن مادرم از می میباشم. دیشب کجا بودید؟ من شما را در خانه شاهزاده خانم نیافتم. لیفین گفت حقیقتش این است که من زود از آنجا بیرون آمدم و چون خیلی خوشحال بودم یک یکسر به خانه رفته و خوابیدم ابلونسکی گفت خوب کاری کردی آنگاه تبسم نمود و همان ای را که به لیفین گفته بود تکرار کرد من اسب خوب را از حرکات او و مرد عاشق را از نگاههایش میشناسم چهرهی فرونسکی باز شد و گفت خوب شما در اینجا چه میکنید من منتظر خانم زیبایی می باشم فرنسکی با تعجب تمام فریاد برآورد؟ خانم زیبا؟ ابلونسکی گفت دوست عزیزم به این زودی به من سوه زن من برای استقبال خواهر خود به اینجا آمدم آه مقصودت آن مکار نیناست؟ ابلونسکی گفت آیا او را می شناسی؟ سروسکی که سعی می کرد آنها را خوب به خاطر آورد گفت شاید من درست او را به خاطر نمیآورم ابلونسکی او گفت ولی بدون شک شوهرش الکسیس کارنین را می شناسی. او مرد معروفی است و همه او را میشناسند. فرونسکی گفت آری من اسم و عکس او را می دانم و می شناسم که نفوذ و معروفیت به سزایی دارد. ابلونسکی گفت به این مناسبت بگو ببینم آیا دیشب ای شب با دوستم لیفین میشل لیفین. آشنا شدی؟ فرونسکی گفت آری ولی متاسفانه او خیلی زود رفت ابلونزکی گفت او جوان باهوشی است چنین نیست فرونسکی جواب داد من او را نمیشناسم ولی در مدت کوتاهی که شب گذشته با او گذراندم دانستم که وی جوان عجیب و زود زودرنج و سریعالانفعالی است ابلونسکی گفت دوست من تو درباره وی اشتباه کردی لیسین جوان خوشاخلاق و مهربان و وفاداری است گمان میکنم حق داشته است که آن وقت اخلاق عجیب داشته باشد زیرا سرنوشت آیندهش بسته به شب گذشته بود و در چنین شبی او خوشبخت یا بدبخت شده فرانسکی در جای خود ایستاده با سراحت لهجه پرسید مقصودات چیست آیا گمان میکنی که لیفین می شب به خانه شاهزاده خانم شرباتسکی رفتی تا از کاترین خواستگاری کند ابلونسکی گفت شاید من شب گذشته متوجه شدم که وی چنین خیالی را دارد و چون او خیلی زود با حالت تأثیر خانه را ترک گفت معلوم می شود از ادامه کلام خودداری کرد ساکت ماند ولی باز چونین گفت بیچاره لیفین او مدف هاست که کاترین را دوست می‌دارد، من خیلی دلم به حال او می سوزد فرونسکی در حالی که نفس بلندی می‌کشی گفت ولی من کاترین را شایسته تر از آن می بینم که همسر لیفین بشود در هر حال چنان چه گفتم من به خوبی لیفین را نمی شناسم. آه ترن در میآید. در آن لحظه آن دو صدای سوت کیز و زننده ای را شنیدند زمین دیر پای آنان به لرزه درآمد و ترند در حالی که از سرعتش کاسته شده بود نزدیک در ایستگاه توقف نمود بعضی از مسافرین پیش از توقف قطار پایین جهیدند فرانسکی در فکر فرو رفته بود که ناگاه یکی از افسران گارد شاهی به او گفت کنت فرانسکی در این واگن است فرونسکی به همان واگنی که افسر اشاره کرده بود رفته خواست بالا برود و چون یک مرتبه دید خانمی میخواهد پایین بیاید راه را برای آن خانم باز کرد و در نخستین نگاه فهمید که آن خانم یکی از های طبقه اول کشور است فوری از خانم مزبور معذرت خواست ولی مجبور شد دان آن خانم که آیت حسن و جمال و لطف دل ربایی بود نگاه دیگری بکند خانم هم که گویی او را شناخت نگاهی بر بیفت چشمانش برقی زد و پس از آن توجه خود را برای پیدا کردن شخصی به اطراف معطوف نمود فرانسکی داخل واگن شد مادرش او را دید دست لاغر خود را دراز کرد فرانسکی دست مادر را گرفته و آن را بوسید مادر چهره پسر را میان دو دست گرفته با مهری تمام پیشانی او را بوسید و به او گفت، آیا تلگرافم به تو رسید؟ آیا حال از خوب است؟ خدا را شکر. فرانسکی در حالی که کنار مادر بنشست گفت، آیا در راه به شما خوش گذشت؟ فرانسکی سوال مادر را نشنیده بود تا جواب آن را بدهد. زیرا چونین به نظرش رسیده بود که صدای آن خانم را که لحظه پیش را دیده بود، هنوز در نزدیکی واکن می شنود. آن خانم چونین می گفت، چه باشد، من در این قسمت با شما هم عقیده نیستم. مخاطب خانم گفت، خانم من در اولین فرصتی که به آورم شما را قانع خواهم ساخت. اما اکنون خداحافظی می کنم. خداحافظ <تصال> آقای ایوان پیتروفکی، خواهشی که دارم این است که اگر برادرم را دیدید او را به اینجا بفرستید. خانم پس از آن به واگن برگشت کنتس فرانسکی از او پرسید، آیا برادر خود را پیدا کردید؟ در آن موقع فرانسکی پی برد که آن خانم آنا کارنینا خواهر ابلانسکی می باشد. از این رو از جای برخواسته و گفت خانم برادر شما اینجاست و خیلی معذرت میخواهم از اینکه در اولین برخورد شما را نشناختم. آنگاه قامت خود را به احترام خم کرد. آنکار در حالتی که تبسم گیرایی بر لبانش نقش بسته بود گفت لازم بود که من از نگاه اول شما را می شناختم. زیرا مادرشان در طول راه همه اش از شما صحبت می راستی بگوید ببینم برادرم کجاست. کنتس سالخورده پیش خود گفت زود باش برو او را به اینجا بیاور. فیروسکی از واگن بیرون رفت تا ابلونسکی را بیاورد. آنا کارنینا صبر نکرد تا برادرش بیاید، بلکه او هم فوری از واگن خارج شد و همین که ابلونسکی را دید، دست در گردن او افکند و با چابوکی که حس تحسین و آفرین فیروسکی را برانگیخت، ی برادر را بوسید. فرونسکی خیره آنا کارنینا را نگاه میکرد و همچنان تبسم میکرد بدون آنکه بداند برای چه تبسم می‌نماید. ولی چیزی نگذشت که به خاطر او که مادرش در واگن منتظر او باشد. از این رو به سوی واگن شتافت و کنت گفت او خیلی لطیف و ظریف است چون این نیست او با صحبت های شیرین خود در راه مرا سرگرم کرد به طوری که ابداً احساس ملالت و خستگی نکردم آن وقت به زبان فرانسه اضافه نمود شنیدم که تو شیفته یکی از دختران خانواده محترمی شده‌ای فرزند به تو تبریک میگویم. مادر، من maksud شما را نمیفهمم. در این لحظه آنا برگشت تا با کنتس خداحافظی کند. آنا گفت: خانم کنتس، شما فرزند خود را یافتید، همانطور که من هم برادر خود را پیدا کردم، ولی از اینکه از پسر خود دور شدهام کمی نگران میباشم. کنتس برای توضیح به پسر خود گفت: آن کارنینا پسری دارد که هشت سالش می باشد. آنا کارنینا گفت، خانم، اجازه می دهید که ملخت شوم؟ عزیزم، امیدوارم که دو مرتبه تو را ببینم، اجازه بده که چهره ی زیبایت را ببوسم. من زن سال هستم و با سراحت لحجه می گویم که تو با شیرین زبانی خوشرفتاری خود قلب مرا رو بودی. چهره ی کارنینا سرخ شد و به جلو خم گردید تا کنتس او را ببوسد. آنگاه به سرونسکی دست داد و واگن را ترک گفت. زیر لب کنتس گفت الحق زن زیبا و دلربایی است و این هم عقیده پسرش بود فرونسکی همه خیره به آن كارنینا نگاه میکرد تا اینکه وی از آن واگن بیرون رفت پس از لحظه ای فرونسکی زیر بازوی مادر را گرفته از واگن خارج شدند در این لحظه گروهی از هر سو میدویدند و معلوم بود که یک امر غیرعادی رخ داده است بعضی از مسافرین فریاد برآوردند چه شده چه چیزی روی داده است؟ کجا آیا او خود را به زیر ترن افکنده آیا او مرد ابلونسکی و خواهرش آنا کارنینا به آنچه که در پیرامونشان گفته میشد گوش دادند و علائم ترس و وحشت در چشمانشان آشکار شد ازدهام زیاد شد و عبور ممکن گردید آنا کارنینا و کنتس بواگون برگشتند ابلونسکی و فرونسکی رفتند تا ببینند چه خبر شده است. پس از تحقیقات دانستند که یکی از پاسبانان که زیاد مست بوده است به زیر ترن رفته و مرده است. ابلونسکی و فرونسکی پس از آنکه جسد خونین و پار پاره ای را دیدند برگشتند در این هنگام انکرنینا و کنتس از قضیه با خبر شدند. ابلونسکی با تحصول زیاد گفت راستی منظره مخوف و قطواری بود. اگر بدانید بدن آن بیچاره چگونه مبدل به یک تودهی از لجن خون و گوشت و استخان شده بود؟ اما فرانسکی همچنان ساکت ماند. ابلونسکی با صدای لرزانی در تعقیب سخنان خود گفت زوجه بیچارهش حاضر بود اگر بدانید آن زن بدبخت خود را بر روی جسد شوهر از فریادهای فریات های دلخراشی میکشید. میگویید آن پاسبان چند نفر نان است؟ آنا کارنینا با تأثیر زیاد فریاد درآورد. آورد. خایا از کاری برای این خانواده بدبخت نمود؟ فرونسکی نگاه سریعی به آنا کارنینا افکند. آنگاه در حالی که دور میشد، به مادر گفت: مادر، دست صبر کنید. هنگامی که پس از چند دقیقه فرونسکی مراجعه کرد، ابلونسکی آن قضیه دلخراش را فراموش کرده بود. و با خواهر خود درباره تماشاخانه ها و کافه و همچنین دربارهی آوازه خان جدیدی که اهالی موسکو با کمال بیسبری منتظر او بودند صحبت می‌کردند. فرانسکی دست در بازوی مادر خود افکند و به راه افتادند. آنا و ابلونسکی آنها را دنبال کردند ولی هنوز از در ایستگاه خارج نشده بودند که مدیر ایستگاه راه آهن در حالی که نفس میزد خود را به آنها رسانیده رو به گفت شما مبلغ دویست روبل به معاون من دادید خواهش میکنم بگویید برای چه این پول را دادید فرونسکی گفت من این پول را برای بیوهٔ آن پاسبانان که کشته شد دادم ابلونسکی فریاد برآورد آیا این مبلغ را به بیوهٔ پاسبان مقتول دادی آنگاه به بازوی خواهر خود فشاری وارد آورد و زیر لب گفت چه آدم خوشغلبی است و مادرش رفتند اما ابلونسکی و خواهرش منتظر درشكهای شدند مسافرین هنوز دربارهٔ آن واژگون بخت صحبت میکردند یکی از آنها گفت عجب مرگ فجیعی بود گفتند که ترن او را دونیم کرد دیگری گفت نمیدانم چرا احتیاطات لازم را اتخاذ نمیکنند تا چنین آمدهای ناگواری رخ ندهد ابلونسکی در, در درشكهای را نگه داشته خواهرش را سوار کالسکه کرد ولی متوجه شد که او گریان است و لبانش میلرزد پرسید را چه میشود دختر گفت چیزی نیست از این قضیهی شوم متأثر شدم راستی فرونستی را از خیلی پیش شناسی؟ آری امیدواریم که به زودی با کاترین ازدواج کند آیا راست میگویی آنگاه سرجانباندی و مثل این بود که در تلاش است که اندیشهای را از خود دور کند پس از آن گفت خب درباره خودمان صحبت کنی نامه تو به من رسید و چنان چه میبینی فوری آمدم بگو ببینم میان تو و داریا چی رخ داده است؟ را با داریا و اطفالش گذرانید و از ملاقات آشنایان و دوستانی که خبر ورود او را شنیده و به دیدنش آمده بودند خودداری کرد. اما غروب آن روز نامه‌ای به اوبلونسکی نوشت که شب به خانه بیاید و شام را در آنجا صرف کند و نامه خود را با این جمله به پایان رسانید: خدا را شکر که در مأموریت خود موفق شدم. او شام را با خواهر و همسر و کودکان خود صرف کرد. پس از چند روز، داریا برای اولین مرتبه با شوهر خود صحبت و گفتگو کرد و با اینکه رابطه ای آنها همچنان سست و ضعیف بود، معهازا فکر جدایی و طلاق از سر آن دو بر اثر سعی کوشش آنا کارنینا دور شد. پس از صرف شام، کاترین برای ملاقات آنا آمد. کاترین چندان با آنا آشنایی نداشت. ولی درباره هوش و زیبایی و گیرایی او خیلی چیزها شنیده بود وقتی کاترین آنکارنینا را دید از جوانی و شادابی و نشاط و حوشبهی در شگفت ماند این به نظر می رسید که او بیش از 20 سال ندارد هر کس با او صحبت می کرد متوجه می شد که آن زن زیبا و جوان رموز و اسراری دارد که کسی نمی تواند آنها را درک کند داریا به اتاق خود رفته ولی به ابلونسکی نشسته و مشغول سیگار کشیدن بود آنها با سر اشاره به اتاق داریا کرد و به برادر خود گفت استیفان برو امیدوارم خداوند تو را موفق بدارد ابلونسکی مقصود خواهر را دریافته و از در خارج شد آنها در میان بچهها مانده آنها را بازی میداد تا اینکه کاترین به او گفت ما هفته آینده جشن رقصی برپا خواهیم کرد و خیلی خوش وقت می اگر شما هم در این جشن شرکت کنید. آنها با کمی پاسخ داد من اصولا از جشن ها و ها نه فقط خوشم نمی آید بلکه احساس خستگی و ملالت می کنم. کاترین گفت، ولی شما که زن زیبا و دل هستید، باید از جشن ها خوشتان بیاید و... ستاره درخشان آن جشن ها و شب باشید، من خواهش میکنم که در این جشن شرکت کنید، رفتی شما در این جامعه گلی خیلی زیبا و دلفریب شدید، آنکارنینا تبسمی کرد و چیزی نگفت، کاترین پیش خود چهره زشت الکسیس کارنین شوهر آننا را مجسم ساخته، تعجب کرد که چگونه این زن زیبا و دلفریب و جوان با چون این شوهر بدترکیب و مخوفی، سر می کند انا گفت استیفان از فرانسکی با من صحبت کرد و من از ته دل به شما شاد باش میگویم. من امروز او را در ایستگاه ملاقات کردم. چهره کاترین سرخ شد و فریاد برابر؟ آیا راستی او را ملاقات کردی؟ استیفان به تو چی گفت؟ چیزهای زیادی گفت من خیلی خوشختم که تو را برای فرانسکی عقد خواهد کرد. من با مادرش در قطار بودم. مادر او در طول راه همه اش از پسر خود تعریف کرد. کاترین گفت: مادرش درباره او چه گفت؟ آنا گفت: مثلا می گفت که وی حاضر شد تمام اموال خود را از دست بدهد تا برادر خود را از ورشکستگی رهایی بخشد و یک مرتبه هم جان خیش را برای زن مقروقی به خطر افکند. آنها به یاد دویست روبل پولی که به بیوه نگهبان بخشید افتاده و نتوانست از تبسم خود داری کند. ولی او به کاترین درباره این بخشش چیزی نگفت. زیرا به حس میکرد که این هدیه و بخشش برای خاطر او بوده است. ناگهان سری جنباند و مثل این بود که میخواست چنین افکاری را از خود دور کند. هنگامی که از جایی برخواست گفت سپاس خدای را استیفان دیر کرد. آنگاه به سوی اطفال رفت و بازوان خود را گشود و با صدایی که از شدت خوشحالی لرزان شده بود فریاد برود. کدامی کدام یک از شما میتونه عمهی خودشو ببوسه؟ همه بچه‌ها یک صدا گفتند: من، من، من. آنگاه همه به سوی او حمله کردند. آن نا همه را در آغوش گرفته و با هم بر زمین افتادند. فصل سیزدهم کاترین خود را برای جشن نامزدیش با کنت فرونسکی آماده همین که سرانجام از اتاق خود خارج گردید و از میان شمها و گلها به سالن رقص رفت, رفت صدای موسیقی دلکشی به گوش رسید مگر چه شده بود به مجرد اینکه کاترین وارد سالن شد چشمش به آنا کارنینا افتاد او در خلال هفته گذشته چندین بار با آنا ملاقات کرده و از وی خوشش آمده بود مانده آن لحظه پی نبرده بود که آنها تا چه حد زیبا و دلفریب برد درستی راستی آنها آیت حسن و جمال به شمار می گرچه جامعه سیاه آنها او را تر و زیباتر کرده بود ولی باید از کرد که آنها علاوه بر زیبایی چهره اندام دل و موزونی داشت و می گفت که قامت دلفریب با اندام متناسب آنها جامعه سیاه مخبلی او را تحت شعاع قرار داده بود انا کارمینا در بین خانم‌ها و آقایان ایستاده با سادگی و زیبایی و دلربایی و نشاط و سادابی خود همه را خیره خیش ساخته بود آنا با استاد رقص کرمنوفسکی صحبت میکرد کاترین به وین نزدیک شد آنا تبسمی از روی مهر و محبت بر وی و با اشاره سر تعجب و آفرین خود را از زیبایی خوشندامی او ابراز کرد. کاترین مقصود آنا را فهمیده و تعارف او را با تبسم تری پاسخ داد. کرمنسکی استاد رفت رو به آنا کرد و گفت کاترین از شاگردان خوب من است. آنا آیا حاضری با هم رفتین؟ آنا مایل به نبود ولی چون دید که در این لحظه فرونسکی به سوی آنها میآید به کرمنسکی گفت بسیار خوب بفرمایید بفرستید آنگاه دست خود را با سرعت تمام بر روی شانه کووانسکی گذاشت و عبدن اعتنایی به فرونسکی که با سر به او سلام میداد ننمود کاترین چون متوجه شد که آنا آمدن پاسخ سلام فرونسکی را نداد متعجب گردید و از خود پرسید برای چه آنا جواب سلام فرونسکی را نداد اما فرونسکی به کاترین نزدیک شد و با وی صحبت کرد سپس با هم مشغول رقص شدند. آیا فرانسکی حوصله رقص نداشت و فکر و خیالش در جای دیگر کار کرد؟ فرانسکی و کاترین دو بار دیگر با هم رقصیدند و در اسنائ رقص های عادی بین آن دو در گرفت. کاترین خیلی نگران شد وقتی شنید که فرانسی درباره لیفین صحبت کند، و از او پرسید که آیا لیفین هنوز در مسکو است؟ کاترین گمان کرد که این سوال مقدمه عشق و نامزدی و زناشویی خواهد بود ولی فرانسکی در این باره چیزی نگفت. کاترین پیش خود گفت که حتما فرونسکی خیال دارد در رقص والف که مهمترین و آخرین رقص هست در این باره سر صحبت را با وی شاید از این رو کاترین به همه جوانانی که از وی خواسته بودند که در رقص والس با آنها به گفت که وی به شخص دیگری قول رقص داده است. تا پیش از آغاز رقص واس، مجلس جشت با آن موسیقی دلکش و روشنایی‌های درخشندهاش به نظر کاترین چون خواب شیرینی بود و دست از رقص نمی‌کشید، مگر وقتی که کاملاً خسته شده، نفس‌هایش به شماره افتاد. در یک چنان هنگامی، نفس‌نان کنار مادر خیش ایستاد. چشمانش به آنا افتاد و دید که وی شاد و خندان است. چشمانش از شدت خوشحالی و سرور برق میزد و از سیمایش آثار پیروزی و موفقیت آشکار است. کارنینا مانند همه ی زیبایان و دلروبایان به خود میبالید و حق هم داشت. زیرا نظر همه مردان را به خود جلب کرده بود. کاترین از خود پرسید چرا آنا این همه مسرور و خوشبخت است؟ آیا؟ جشن و رفت تا این درجه او را خوشحال مصرور کرده است؟ با وجود شخص معینی؟ در آن موقع ناگهان متوجه مردی که می شد و حس کرد که قلبش فرو ریخته و از حرکت باز مانده است. آری، آنا با فرانسکی می و فرانسکی هم آهسته با او صحبت می کرد در حالی که چهره و چشمانش از تذرع و خاری و التماس او حکایت می نمود. آری مثل این بود که فرونفکی در صده است خود را به روی پای آننای زیوا بیفت کند و سرشک دیدگانش را با کفش های آننا پاک کند آننا به سخنان فرونفکی گوش میداد. در چشمانش علائم خوشحالی و بر برلبان لعلگونش تبسمی از روی خوشبختی و پیروزی نقش بسته بود گویی آننا سعی کوشش دارد عواطف و احساسات خود را پنهان بدارد بلی این احساسات مخفی نمانده و نه فقط از سیمای چشمانش بلکه از حرکات پر از نشات و دلروبایی و حیجان او ظاهر شده بود. کاترین بیچاره هست کرد که قبار یس و ناامیدی و غم و غصه چشمان او را تار می کند. های خندان و خوشحال حاضرین و شمهای فروزان و گلهای رنگارنگ و شاداب را از نظر او پنهان می دارد. بلی هر طوری بود، خودداری کرد و به گفت و شنود پرداخت سوالات همه را پاسخ می داد و بالاتر از این تبسمی هم می نمود سرانجام هنگام رقص والس رسید ولی دنیا در نظر کاترین تیره و تار گردید زیرا دید فرانسگی همچنان در کنار آنا نینا ایستاد و مثل این است که خیال ندارد آنها را ترک گوید و برای رقص به سوی او پیش بیاید Thank you.